جن فصل بخش دوم در بعضی برنامه های ارائه شده ابتکار دیده می شود. البته نه به آن اندازه که در نویسندشان وجود داشت قابل توجه است که راهبرد برنده از همه سادهتر و به ظاهر کم ابتکاری تر بود اسمش این به آن در بود و آن را پروفسور آناتول راپوپورت راونشلاس معروف و نظریه پرداز بازی ها از تورنتو فرستاده بود این بااندر با حرکت همکاری شروع میشد و بعد از آن فقط با نسخه برداری از حرکت قبلی حریف صورت می گرفت چگونه بازی شامل این بااندر می تواند پیش برود مثل همیشه چیزی که اتفاق می افتد به بازیکن مقابل بستگی دارد اول فرض کنید بازیکن مقابل هم این بااندری باشد میدانیم که راه پرت هم در مقابل نسخه ای از خودش و هم در مقابل چهارده راه برد دیگر بازی می کند. هر دوی این باندری ها کار را با همکاری شروع می کنند. در حرکت بعد هر کدام حرکت قبلی طرف مقابل را که همکاری است تقلید می کنند. هر دو تا آخر بازی همکاری می کنند و در پایان هر دو به امتیاز مبنا که 600 باشد می رسند. حالا فرض کنید این با آندری در مقابل راهبردی به نام مبتدی بازی می کند. در واقع مبتدی وارد مسابقه اکسلورد نشده بود، با این حال دیدنش آموزنده است. در کل شبیه این با آندری است فقط هر از گاهی مثلا در ده حرکت یک بار به طور اتفاقی و بی جهت کلک می‌زند تا امتیازات بالایی را صاحب شود که وسوسه انگیز است. تا وقتی مبتدی بخواهد یکی از کلکهایش را بیاورد، ممکن است بازیکنها دوباره این با آن در کرده باشند. یک بازی طولانی با منفعتهای پشت سر هم ناشی از همکاری دو جانب دورهش را طی می کند و هر دو بازیکن بی درد سر به صد درصد مقدار مبنا می رسند. اما ناگاهان بدون خبر مثلا در حرکت هشتم مبتدی کلک را می آورد. البته این با آن در در این حرکت همکاری را آورده بود. و بنابراین صفر امتیاز که بازده حالوست گیرش میآید مبتدی به ظاهر جلو افتاده چون از حرکت خود پنج امتیاز به دست آورده. اما این به اندر در حرکت بعد تلافی می کند. کلک را می یعنی فقط همان قاعده تقلید از حرکت قبلی حریف را دنبال می کند. در این موقع مبتدی که چشم بسته از قوانین درونسرشتی خود پیروی می حرکت همکاری حریف را تقلید می کند، بنابراین حالا بازده سادلو که سفرست مال او می شود، در حالی که این باندر با امتیازی بالای پنج را کسب می کند، در حرکت بعدی، تا حدی ناعادلانه شاید، کلک این باندر با را تلافی می کند، و به این ترتیب این تغییر ادامه می یابد. در جریان این جا به جایی ها، به هر دو بازیکن به ازای هر حرکت دو نیم امتیاز، میانگین پنج و سفر می میرسد این کمتر از سه امتیاز یک نباختی که میتوانند با همکاری دو جانبه در حرکت ها به دست آورند و زملا دلیل آن شرط اضافی است که قبلا به آن اشاره شد بنابراین وقتی مبتدی در مقابل این با اندر بازی میکند نتیجه هر دو بدتر از وقتی است که این در مقابل این با اندر بازی میکند و وقتی که مبتدی در مقابل مبتدی بازی میکند هر دو نتیجه شان باز بدتر است زیرا جریان کلک متقابل زودتر شروع می شود. حالا یک راهبرد دیگر را مجسم کنید. نامش کاوشگر نادم است. کاوشگر نادم مانند مبتدی است. با این تفاوت که برای برهم زدن جریان تلافی های متقابل قدم های محسر بر می دارد. برای این کار لازم است حافظش کمی مدت دارتر از این با اندر مبتدی باشد. کاوشگر نادم به یاد دارد که طرف مقابل حالا بی مقدم کلک زده یا اینکه برای تلافی بلافاصله این کار را کرده است اگر بی مقدمه باشد با ندامت میگذارد حریف یک ضربه آزاد دیگر بدون تلافی داشته باشد این یعنی جریان تلافیجوییهای متقابل در نطفه خفه میشود اما اگر شما بازی را بین کاوشگر نادم و این با در مجسم کنید متوجه میشوید که جلو جریانهایی که بعدا به تلافیجویی متقابل تبدیل خواهد شد فورا گرفته میشود در بیشتر بازی ها همکاری های دو جانبه برقرار است و هر دو بازی کن از امتیاز خوب به حاصل از آن برخوردار می شوند. بازده کاوشگر نادم در مقابل این با در بهتر از بازی مبتدی در مقابل این با در است. البته نه به خوبی وقتی که این با در مقابل خودش بازی می کند. بعضی از راهبردهایی که در مسابقات اکسلورت شرکت کرده بودند خیلی پیچیده تر از نادم، یا مبتدی بودند اما روی هم رفته در نهایت امتیازشان کمتر از این به آن در ساده بود در واقع راهبردی که از همه به سه موارد اتفاقی کمتر موفق بود از همه مفصلتر بود آن را کسی بدون ذکر نام ارائه کرده بود و موجب این حس های خوشایند شد یک آدم عالی مقام در پنداگون است رئیس سیا اندکسینجه خود اکسلورد فکر نمی کنم هیچ وقت معلوم شود فقط بررسی جزئیات راهبردهای ارائه شده نیست که ما را جلب می کند. موضوع این کتاب، مهارت در برنامه نویسی کامپیوتر نیست. جالبتر دستبندی راهبردها بر اساس مقوله های معین و بررسی موفقیت آن دسته است. مهمترین معقوله که اکسلورد مشخص کرد خوب بود. تعریف یک راهبرد خوب این است که هرگز در کلک زدن پیش قدم نباشد. یک نمونه آن این با در است. می تواند کلک بزند ولی فقط این کار را برای جویی انجام می دهد. راهبردای مبتدی و کاوشگر نادم هر دو بدند. چون گرچه خیلی کم گاهی بدون دلیل کلک میزنند از 15 راهبردی که در مسابقات شرکت داشتند 8 خوب بودند. جالب توجه این است که 8 راهبردی که بالاترین امتیازها رو را داشتند همین 8 راهبرد خوب بودند. آن هفتای بعد از قفله عقبده بودند. میانگین امتیاز این به آن 54 بود، 84 درصد مقدار مبنا یعنی 600 و امتیاز خوبی بود. رابرد های خوب دیگر فقط کمی از این کمتر بودند. امتیازها بین 83 میز چه درصد تا 8 با میز 6 درصد مقدار مبنا بود. بین این نمره. و ۶ و8 درصدی که گراسکامب به دست آورد فاصله زیادی هست گراسکامب در میان بدها از همه موفقتر بود. کاملا آشکار است که در این بازی آدم های خوب بازدهشان خوب است. یک اصطلاح فنی دیگر استورت گذشت است. راهبرد گذشت راهبردی است که گرچه ممکن است تلافی کند ولی حافظه خوبی ندارد. دلخوری های گذشته را زود فراموش می کند. این با آن در در یک راهبرد بخشنده است. کسی را که کلک در سر گوش مالی گوشمالی دهد ولی بعد از آن دیگر گذشته ها گذشته است. حسابگری که در فصل دهم ده بان اشاره کردیم اصلا بخشنده نیست. همه چیز را در طول تمام طول بازی به یاد دارد، هرگز کلکی را که به او زده شده فراموش نمی کند حتی اگر فقط یک بار بوده باشد. راهبردی زاهرا شبیه به در مسابقات اکسلور شرکت کرده بود به نام که نتیجه چندان جالبی نداشت در میان همه های خوب توجه داشته باشید خوب از نظر فنی ولی در کل بیگذشت حسابگر فرایدمن یکی مانده به بدترین بود دلیل اینکه های بیگذشت بازده خوبی ندارن این است که نمیتوانند از جریان های متقابل خارج شوند حتی اگر حریفشان نادم باشد حتی شاید از این به در هم میتوان با گذشتتر بود این به آن دوتا در که بعد از دو بار پشت هم کلک خوردن یک بار تلافی می کند، شاید خیلی بزرگوار و نظر بلند باشد در هر صورت اکسلورت پیبرد اگر کسی این به آن دوتا در را ارائه کرده بود برنده مسابقه میشد. به این دلیل که اجتناب از دور انتقامجویی دو جانبه خیلی خوب است به این ترتیب ما دو مشخصه برای راهبردهای های پیروز معرفی کردیم خوبی و گذشت این نتیجه ای آرمانگرایانه که خوبی و گذشت آغबत به خیر است ممکن است برای بسیاری از متخصص ها عجیب جلوه کند برای آنهایی که با زیرکی روآوردهای موزیانه را به صورت ملایمی ارائه کردند در حالی که حتی بعضی هایی که راهبرد خوب داده بودند جرأت نکرده بودند راهبردی که مثل این به اون دو تا در باگذشت باشد ارائه کنند استور دور, دور دوم مسابقات را اعلام کرد او 62 شرکت کننده داشت و یک راهبرد برد اتفاقی رو هم به آنها افسود و آنها را شست و سه تا کرد این بار تعداد حرکتهای هر بازی به دویست دور محدود نبود و آزاد گذاشته شده بود به دلیلی که بعداً با هم می رسیم. ما هنوز می توانیم نمره ها رو به صورت درصد از مقدار مبنا یا نمره همیشه همکاری بیان کنیم گرچه دیگران مبنا همیشه عدد ثابت ششصد نیست و محاسبهش پیچیده تر است تمام برنامه نویس های دوره دوم مسابقات نتایج مسابقه قبلی را در اختیار داشتند. از جمله این تحلیل اکسپلورد را که چرا بازده این با آن در و دیگر راهبردهای خوب اینقدر بالا بوده است. فقط این انتظار وجود داشت که شرکت کننده ها به نحوی از اطلاعات قبلی بهره بگیرند. در واقع آنها به دو مکتب فکری تقسیم شدند. اددی ای اینطور استدلال کردند که خوبی و گذشت میتواند خصللت پیروز باشد و بر این اساس راهبرد های خوب و با گذشت ارائه کردند. مینارد سمیت چنان زیاده روی کرد که این به آن دوتا در فوق باگذشت را ترک کرد. آن مکتب فکری دیگر این طور کرد که چون بسیاری از همکاران که تحلیل اکسلورد را خانده اند حالا راهبرد خوب با گذشت ارائه می کنند. بنابراین آنها راهبردهای های بد بدهند تا از این نرمی قابل پیش پیشبینی بهرهجویی کرده باشند. اما باز هم بدی فایده نداشت. باز هم این به آن در که آناتول راپوپورد داده بود برنده شد. و با نمره بالایی که 96 درصد میزان مبنا بود و یک بار دیگر در کل راهبردهای خوب از بد پیش افتادند از 15 راهبرد اول همه خوب و فقط یکی بد بود از 15 راهبرد آخر همه بد و فقط یکی خوب بود گرچه اگر در دور اول مسابقات این به آن دوتا در پرگزشت ارائه می شد. رتبه نخست را به دست می آورد. اما اینجا مقام دوم را کسب نکرد. علت این بود که حالا راهبردهای های موزیانه نامحسوستری وارد میدان شده بودند که می توانستند بیرحمانه نرمش های تمام ایار را به دام بیندازند این بر نکته مهمی در این مسابقات تاکید می کند. پیروزی یک راهبرد بستگی به این دارد که چه راهبردهای دیگری ارائه شده باشد. این تنها راه طبیعین تفاوت بین مسابقات دوری دوم است که در این با ان دو تا در در ردیفهای پایین رتبه بندی قرار گرفت ولی در مسابقات دوری اول میتوانست برنده محسوب شود. اما همونطور که قبلا گفتم این کتاب درباره ابتکار برنامه نویسی در کامپیوتر نیست آیا می توانیم به صورت عینی داوری کنیم در یک مفهوم کلی و کمتر قرار دادی کدام راهبرد واقعا بهتر از همه است آنها که فازهای پیش از این را خوانده اند آماده تا پاسخ را در نظریه راهبردهای نظر تکاملی پایدار بیابند من یکی از کسانی بودم که اکسلور نتایج اولیه و دعوت برای شرکت در دور دوم مسابقات را برایم فرستاد من شرکت نکردم ولی پیشنهادی برای او داشتم قبلا اکسلورد در ارتباط با ای اس, اس فکر کرده بود اما از نظر من این جهتگیری آنقدر مهم بود که در نامه‌ای بود پیشنهاد کردم باید با وی دی همیلتون که آن وقت در بخش دیگری از همان دانشگاه میشیگان بود ولی اکسلورد او را نمی‌شناخت تماس بگیرد او هم تماس گرفت و نتیجه همکاری از آن به بعد آنها یک مقاله مشترک بینظیر بود که در مجله ساینس 1981 منتشر شد مقالی که جایزه نیوکام کلیولند انجمن آمریکایی ترویج علوم را به خود اختصاص داد اکسلورد و همیلتون علاوه بر اینکه چند نمونه زیست شناختی از معمای زندانی تکراری را که به ترس جالبی حیرت آور بود مورد بحث قرار دادند کاری کردند که من آن را شناخت کافی از روی کرد ای اس اس به حساب می آورم روی کرد ای اس اس را با نظام مسابقات دوره ای که اکسلورد در باری آن به کار برده در مقابل هم قرار می‌دهیم هر مسابقه دوره ای مثل یک لیگ فوتبال است. هر راهبرد در مقابل همه راهبردهای دیگر به دفعات مساوی بازی می‌کند. نمره نهایی هر راهبرد مجموعه امتیازاتی است که در مقابل راهبردهای دیگر کسب کرده است. بنابراین هر راهبرد برای موفق بودن در بازی‌های ای باید در مقابل همه راهبردهای دیگری که ممکن است افراد بفرستند رقابت خوبی داشته باشد. راهبردی که در مقابل انواع مختلف راهبردهای دیگر بازی خوبی داشته باشد را اکسلورد مستحکم و جاندار و استخاندار می نامد. این به آن یک راهبرد مستحکم است. اما مجموعه راهبردهایی که افراد ارائه کرده اند یک مجموعه دل بخواه است. این همان نکته است که در بالا ما را نگران می کرد در مسابقه دور اول اکسلورد حدود نصف شرکت ها خوب بودند. در آن و احوال این به آن برنده بود در همان حال و هوا اگر این به آن دوتا ارائه می شد برنده می بود اما فرض کنید به طور اتفاقی تقریبا همه آنهایی که وارد مسابقه شده بودند بد بودند خیلی راحت ممکن بود چنین وضعی پیش بیاید چون از 14 راهبرد ارائه شده 6 تای آن بد بودند اگر سیزده تای آنها بد می بود آن وقت این به آن در برنده نمی شد. و احوال برای او مناسب نبود نه فقط پول برده شده بلکه درجه بندی رتبه موفقیت راهبردها بسته به این است که چه راهبردهایی در مقابل ارائه شده باشد. به عبارت دیگر بسته به چیزی است که مثل خواست انسانها دل بخواهی است. چگونه می توانیم از دل بخواهی بودن آن کم کنیم با تفکر به یهسیس از فصل قبل به یاد داریم که مشخصه مهم یک راهبرد از نظر تکاملی پایدار عبارت بود از ادامه دادن به عملکرد خوب در وقتی که شمار آن در جمعیت راهبردها فوزونی گرفته است. وقتی میگوییم این به آن در یک اس است یعنی در آوزا و احوالی که این به آن درها حاکمند عملکرد این به آن در خوب است. این را میتوان توان نوع خاصی از استحکام در نظر گرفت. در ما به عنوان تکامل باوران این گرایش وجود دارد که آن را تنها نوع مستحکم با اهمیت به حساب بیاوریم. چرا اینقدر مهم است؟ زیرا در دنیای داروینیسم برنده شدن، پول دار شدن نیست، صاحب فرزند شدن است. برای یک داروینی، راهبرد موفق، راهبردی است که در جمعیت راهبردها پرشمار شده باشد. یک راهبرد برای اینکه موفق باقی بماند. باید مخصوصا وقتی پرشمار است یعنی در اوضاع و احوالی که نسخه های خودش فراگیرند عملکردش خوب باشد واقعیت این است که اکسلورد دور سوم مسابقتش را مثل جریان انتخاب طبیعی در پی ESS راه انداخت در واقع او اسم آن را دور سوم نکذاشت چون فراخان برای شرکت افراد جدید نداد بلکه از همان 63 و سهتایی دوم استفاده کرد برای من راحت تر است که آن را دور سوم به حساب بیاورم. زیرا فکر می که در کل فرقش با دو دوره مسابقات قبلی بیشتر از تفاوتی است که دوره های اول و دوم با هم داشتند. اکسلورد این 63 راهبرد را دوباره وارد کامپیوتر کرد تا نسل اول یک سلسله تکامل را بسازد. بنابراین اوضاع و احوال در نسل اول از عرضه یکسان همه 63 راهبرد تشکیل شده بود. در پایان نسل اول، بوردها نه به صورت پول یا امتیاز که به صورت فرزندانی همانند پدر و مادر غیر جنسیشان بود. با گذشت نست بعضی راهبردها کم شمارتر و سرانجام منقرض شدند و شمار بعضی دیگر فوزینه گرفت. به این ترتیب، وقتی نسبتها تغییر کرد، اوضاع و احوال که در آن حرکتهای آینده بازی هم باید صورت می گرفت، عوض شد. سرانجام بعد از حدود هزار نسل دیگر نه تغییر در نسبتها بود نه تغییری در اوضاع احوال زمان پایداری فرا رسیده بود قبل از این وخت راهبردهای مختلف فراز و فرود داشت درست مثل بازها هالوها و حسابگرهای شبیه سازی شده در کامپیوتر من بعضی راهبردها از همان اول رو به انقراض گذاشتند و بیشترشان تا نسل دویست از بین رفتند از بیان راهبردهای بد، یکی دو تایشان از نظر بسامد به افزایش گذاشتند. اما این اقبال، مثل اقبال حقوبازهای شبیه سازی شده من، دیری نپایید. تنها راهبرد بدی که بعد از نسل دیویست هم زنده بود، هرینگتون نام داشت. بخت با هرینگتون در 150 نسل اول یار بود، بعد از آن به تدریج افت کرد و در حوالی نسل هزار به انقراض نزدیک شد. عمل کرده هرینگتون به صورت موقت خوب بود به همان دلیل که حقه بازی‌های من چنین بودن. آنها وقتی هنوز دوربرشان پر بود از ضعف و نرمی این به آن دوتا در یعنی زیادی باگذشت به نفت خود استفاده میکردند سپس وقتی آن نرم ها رو به انقراض گذاشتند هرینگتون هم رو هم به دنبال خودشان بردند چون دیگر طعمه آسانی باقی نمانده بود ارث برای راهبرد‌های خوب ولی تهدیدپذیر مثل این به آن در باز بود. در واقع خود این با آن در در سوم در پنج تا از شش دور بازی مثل دورهای اول و دوم بالا آمد. 5 راهبرد خوب ولی تحریک پذیر دیگر تقریبا به همان نتیجه این با آن در رسیدند. از نظر بسامد در جمعیت در واقع یکی از آنها در دور ششم برنده شد. وقتی همه بدها از میدان به در شدند، دیگر برای تشخیص یک راهبرد خوب از این به آن در یا از دیگر راهبردها راهی وجود نداشت. چون همه خوب بودند. در مقابل هم فقط از ورق همکاری استفاده میکرد. پیامد این غیرقابل تشخیص بودن این است که گرچه این با آن در مثل یک ایSS هست، دقیقا یک ایSS واقعی نیست به یاد دارید که، یک ایساس واقعی وقتی فراگیر شد، دیگر نباید توسط یک راهبرد نادر جهش یافته سرکوب شدنی باشد. اکنون درست است که هیچ بری نمیتواند به این به آن در تسلط یابد، اما در مورد راهبردهای دیگر قضیه فرق می کند. همانطور که کمی پیش دیدیم، در جمعیت راهبردهای خوب، همه ظاهر و رفتارشان دقیقا مانند هم است. آنها هم همکاری می کنند. بنابراین یک راهبرد خوب دیگر مثل آنکه قدیسان همیشه همکاری کند گرچه مسلما در مقابل این به آن در از امتیاز گزینشی مثبتی برخوردار نیست با وجود این میتواند بدون اینکه توجهی را جلب کند به درون جمعیت راه یابد و بنابراین از نظر فنی این به آن در وضعیت ای اس, اس نیست شاید شما فکر کنید چون دنیا به همین خوبی که هست باقی میماند میتوانیم این در را یک ESS در نظر بگیریم اما افسوس ببینید بعد از چه میشه برد به خلاف این باندر همیشه همکاری در مقابل حجوم های بد مثل همیشه کلک تاب مقاومت ندارد. همیشه کلک در مقابل همیشه همکاری پیروز است زیرا در هر بار نمره بالای وسوسه را کسب میکند راهبردهای های بد مثل همیشه کلک وارد می شود و شمار راهبردهای بیش از ازت خوب مثل همیشه همکاری را پایین می آورند. هرچند وقتی دقیق صحبت می کنیم، این با آن در اس واقعی به حساب نمی آید. اما شاید منصفانی این باشد که یک جور این با آن در مانندی را که مخلوطی از راهبردهای های زاتن خوب ولی تلافی در عمل کم و بیش معادل یک اس در نظر بگیریم. در چنین مخلوطی شاید کمی بدی هم قاطی شده باشد. در یکی از کارهای جالبی که در ادامه کار اکسلورد انجام گرفت، رابرت بووید و جفری لوبربام مخلوط این به آن دوتا در و راهبرد دیگری به نام این با آن در مشکوک را زیر نظر گرفتند. این با آن در مشکوک از نظر فنی بد است، اما خیلی بد نیست. رفتارش درست، مثل این با آن در بعد از حرکت نخست است. اما در حرکت اول هر بازی کلک میزند. این چیزی است که از نظر فنی آن را بد می کند. در اوضاع و احوالی که این به آن در تسلط کامل دارد این به آن در مشکوک راه بر جای نمیبرد. زیرا کلکی که در اول میزند باعث میشود یک جریان ادامه دار انتقام جوی دو جانبه برقرار شود اما وقتی به یک بازیکن این به با آن دو در بر میخورد، گذشته بیشتر این به آن دوتا در این انتقام گیری را در نطفه خفه می کند. هر دو بازی کن در آخر دست کم با مقدار مبنا به پایان بازی می رسند و این به آن در مشکوک به خاطر کلکی در ابتدا زده یک مقدار بیشتر دارد. باید و لوبربام ثابت کردند که ممکن است جمعیت این به آن درها سرکوب شود. به زبان تکاملی در مخلوطی از این با آن دوتا در و این با آن در مشکوک هر دو اینها در کنار هم کامیاب خواهند بود تقریبا با اطمینان می شود گفت که این ترکیب تنها ترکیبی نیست که به این ترتیب می تواند تسلط پیدا کند احتمالاً مخلوط های زیادی وجود دارند که از ترکیب کمی راهبرد بعد با راهبرد های خوب و خیلی با گذشت تشکیل شده اند و می توانند میدان باشند شاید بعضی ها در این قضیه انعکاسی از جنبه آشنای زندگی انسان ها را ببینند. اکسلور تشخیص داد که این باند با در یک ای ایسس خیلی دقیق نیست و بنابراین برای تعریف آن عبارت راهبرد برد روی هم پایدار را ساخت. مثل مورد ای های واقعی ممکن است بیش از یک راهبرد برد روی هم پایدار در آن واحد وجود داشته باشد. و باز بستگی به تصادف دارد که کدام آنها بر جمعیت حاکم شود؟ همیشه کلک هم مثل این باندر با ثبات با است. در جمعیتی که همیشه کلک ها بر آن حاکمند، هیچ راه برد دیگری نمیتواند پیشی بگیرد. میتوانیم این نظام را دارای دو نقطه صبات در نظر بگیریم که یک نقطه صبات آن همیشه کلک و نقطه صبات دیگر آن این به آن در یا مخلوطی از راهبردهای اکثراً خوب و تلافی جوست هر نقطه صباتی که اول بر جمعیت حاکم شود همچنان باقی میماند